اسم فائل این طور عنوان شد که سخ اسم فائلن که فائل اسم فائل رو بر وزن فائل بساز ازا منزی سلاستن اگر از فعل سلاسی باشد مفتوحل این لازم و متعدی ازا منزی سلاستین یکونو که قصاد یا نه فعله باشد مکسور ال اما متعدی مثل رکب و راکب قضا به معنای سال لازم قضا به معنای قضاداد تعامداد متعدی هر دو استفایلش ماده قازم. مثل زاهب و زارب زهب و زرب مفتوح گفت و حوه قلیلون و حالا که این وزن فایل قلیل است، در فاول تو همزعامیز خیلی کمه و در فعلایی که متعدی نباشد یعنی فعلایی که چیه لازم باشد این هم باز درش کمه که ما امن نداشته باشیم فحوا عمل سالمه فحوا ساده کمی بلکه قیاس و بیشتر یعنی شازه این موردش قابل قیاس نیست بلکه قیاسش چیه بر قیاس او فعل قیاسش فعل است و افعال است و فعلان قیاس یعنی قیاس این اول مرجع وزن فعله غیر متعدی کو فعل است افعال هست و فعلان مثل عشر از عشر بطر از و تره سرمست شد شلوی شد و نهو سدیان که دلالت بر حرارت باطن و امتلاع میکرد مثل شبان سدیان و نهو الاجهر که دلالت بر خلقت میکرد الاخذر دلالت بر فنگ وزن اخذر بعد عنوان کرد که و فاعله گفت این دو تا وزن برای فعوله خیلی خوبه مثل زخم و جمیل که فعل جمیل فعلو جمع. جمع. و فعلو جمل جملو نه و افعلان فیه قلیلون وزن افعل فیه یعنی در این وزن فاعله قليلن افعل بیا صفت مشبهه در فاعله میگه قلیلون. و عاطفه آتفه افعلون مبتدا قلیلون خبرش فیه متعلق به قلیلون فیه هاش میخوره به فعوله و افعلون فیه قلیلون و فعل و فعل اتفاست به جای افعلون و به سوا بذارید به. پس گفت وزن افعال و وزن فعال هم بگید در وزن فعاله قلیل است بگید. و افعالون فیه قلیلون افعال در این فعاله قلیل است یعنی مقصورون علی سما مقصور است بر سما شنیدن از عرب باید بشنبیم. وقتی شنیدیم میتونیم بگیم وگر نه مقصور بر سما مقصور رو نما. مثال بزن میگه چخط و به ف ختب خط و ف ختب خط و فل لازم میگه وزن صفت مشببه اومده چی؟ ختب میگه این ولله خط و اما این کلمه خطوبه فخوبه اختب بغلش بنویسید در بعضی از نسخه ها اینطور آمده است در بعضی از نسخه ها اینطور آمده است خض و به بازاد فهوه اخزب بعضی از نسخه ها با ذات نوشتن خزوبه و فهوه اخذب و اینطور طور تفسیر کردند. ای احمر اخذب رو معنا کردن به معنای چی؟ احمر این صحیح نیست این صحیح نیست زیرا خزبه ما داریم نه خزوبه. خزبه خزبه به فتحل این خزبه نرسید، ما نداریم و در بعضی نسخه های دیگر و در بعضی نسخه های دیگر خط حوبه مثل همینجا فحوبه اختب و تفسیر کردند ای اخذر یعنی رنگ سبز اخزر ولی این فعل نیست ولی این فعل نیست به کسر ره این الفعل است یعنی خطبه مثل سویده اسود که قبل از این خواندیم به کس این است درست اما خضوبه بازای معلفه، فهو و اخزب بازای محلفه نیز نرسیده است نیز نرسیده است پس این مثال اگر خضوبه با زاد خونده شه گفتیم خذب است نداریم اگر خضوبه با زای معلفه خونده بشه گفتیم نرسیده اگر خطوبه خونده بشه فعوبه اختب گفتیم کلمه خطبه است فعوبه اختب فعوله نیست حالا تو کتاب ما اینطور نقل شده لذا ما کاری به کار وزنش بگی داریم نه کاری به کار مثالش ایشون گفتش وزن افعال درش چیه؟ قلیله یه دونه از این قلیلا رو که آهی ملا جلال برای ما مثال از کتاب لغت زده ظاهرا کتاب لغتی که وجود داشته حرکاتش با این حرکات تحقیقی که شده موافق نیست حالا ما کنار این می‌نویسیم قد یعتی قد یعتی علا وزن افعل قد یعتی وزن افعل یعنی قد یعتی صفت مشبه بر وزن افعل از فاعلا نغبو هر و شر هر و شباهه جیم ای خشونه ای خشونه بزن فعول است، تو که دابای لغت فعیلی مونم هست و هوه احرش ببینی صفت مشبرش اومده چی؟ احرش و هوه احرش و معنسوه هر شاق هر شاق و جمعه ما هرش جمعشو نمومده چی؟ هرش مثال صحیحی که الان هم وجود داره این رو مثال زدیم که بعضی از شراخ اصلا از این مثال ایشون استفاده نکردن مثل مکودی همین مثال حروشه رو زده که مثالیه که در کتاب لغت بر این وزن هست و کذا فعلون و همچنین وزن فعل یعنی قلیل است مثل حفعل به فتحل ای که بطل بطل یعنی پهلوان شجاع قهرمان فهوه بطوله بطوله فعلش فهوه بطلون فهوه بطلون ای شجاعون قوییون بینمیسید مستر بطوله بطولت است بطوله یادتونه گفتیم که فهوله مسترش فعاله میاد و فوعلہ بتولا درست تلاشا و مصدر اون بطله هستش بطله یبتلو که معنای ضد عمل در عمل یعنی انجام داد بطله انجام نداد کرد اون مصدرش بتالت است میگن وقتشو به بتالت میذارونه اون مسترش فعاله لذا بطل از فعل فعاله گرفته شده که مسترش هم چیه؟ بطولت اون مسترش بطالت است و بطلان بطل یبطلو بطالتن و بطلانن خب که بطل فعوه بطلون و فعالون وزن فعال به فتح الفا که و به زمه ها که شجاع فهوه شجاعون و به زمه ها یعنی به زم فاولفل که شجاع فهوه شجاعون و فعلون به زم الفای فولون به زم الفای و عین که جنوب فهوه جنوبون صفت مشبه است و فعلون وزن فعلون به کسر الفا و سکون الین که افوره فهوه افرون یعنی مکار افر خب اینها را همه را بهش میگفتن صفت مشبهه گفت بر وزن فعوله تو این اوزان میان بعضش کسیره بعضش چیه ولیله گفت فعلون اولا و فعلون به فعل که زخم ول, ول و جمول و افعلون فیه غلیلون و فعل گفت دوتا غلیله و چند تا وزن دیگر هم ملا جلال از قلیل ها به ما نشوند میگه و به سول فعل قد یقنا فعل یادتون باشه گفتیم که وزن فعله چه لازم چه متعدی تفائلن. سوق اسم فائل ازا منزی سلاستن یکونو که غذا گفتیم اگه فعلا باشه چه لازم چه متعدی میاد چی؟ ازا منزی سلاستن یکونو که غذا میاد بر وزن فائل میگه این استثنای به اونه و به سوا الفائل به غیر از اون وزن فائل هم که گفتیم بهتون قد یقنا قد بر سر فعل مزاره گاه اوقات بی نیاز میشه فعل میگه وزن فعله که باید بر وزن اسم فائل فائل میامد گاه اوقات به غیر وزن فائل بی نیاز میشه یعنی غیر وزن فاعل میاد براش و به سه وزن فائل قد یقنا فعل واقع استینافیه به سوا متعلق به قد یقنا سوا اضافه شده به الفاء. فعل فاعل قد یقنا فاعل فعل قد یقنا نقطه سر خط و به سوال فعل قد یقنا قد یقنا برای تقلید. به فتحه و نون یغنا یقنا بخون یعنی بینیاز می شود قنی می شود فل لازمه قد یغنا فعلون کشاخ ببا شاخ یشیخو باید بیاد طبق قاعده چی؟ شائخ مثل باعیبی و باعه ولی اومده فخوه شیخون شائخ نایمده بر وزن فعل اومده به سوای وزن فایل فقابه شیبه و شابه یشیبه یعنی پیر شد شیب پیری وشتر در لس و شیبه شابه یشیبه اومده چی؟ اشیب جمعه اشیبه میشه چی؟ شیبه شابه یشیبه فقابه اشیبه اف ببینید اینم هم مزاحب فخوه چی؟ افیفون تاب فخوه تییبون یعنی تییب اومده تائب داریم مثال هایی که بر غیر این اومده پس اینی که ما به شما گفتیم کفائلن سخ اسم فائلن ازامن زی سلاستن یکونو که غذا و به سبل فایله قد یغنافت حاله رو هم دو گوشه داشته باش. که گای اوقات از وزن فایل وزن دیگری کار او رو انجام میده که بهش میگن صفت مشبه میگه و جمعی و مازوکره غیر و وزن فایل صفاتون مشبهتون غیر از وزن فایل هر وزن دیگری رو که برای شما گفتیم از این اوزانی که کار اسم فاعل را انجام میده بهش میگن صفت مشبهه به فاعل خود اسم فاعل هم که وزن فاعل داره گایی با گا صفت مشبهه واقع میشه صفت مشبهه به اسم فاعل به ثبوت و حدوثشه حالا یه مثال من بگم مثلا فرض بفرمایی که یک مریضی داریم دکتری میاد اینو میبینه بهش میگه نمیمیری چیزت نیست. برمیگردیم میگیم هم انا اطبب و مریزه. یعنی اطمینان داد این دکتر به این مریض. بعد میگیم فہو و مطمئن و فہو مطمئن مطمئنن. پس مریض مطمئن شد. یعنی اطمینان بر او حاصل شد. این فہو و مطمئنن که ما عنوان کردیم این مطمئن اینجا چیه؟ اسم فاعله. چه حادث شده؟ بره. یه موقع هم یا ایه تو هم نفسون مطمئن نه نفس مطمئن نداشتن دیگه یک لحظه ای آرز نمیشه اگر هم بیاد زوالش یک لحظه ای بگی دوام داره لذا المطمئن نه اینجا چیه صفته؟ مشغلده هایت سبود همینطور کلمه تاهر مثلا فرض بفرمایید که اینجا مثلا نجاستی بریزه ما پاک کنین بعد هم آب بکشین میگیم حاضر موضع تاهران این موضع تاهره یعنی چی؟ یعنی نجس نیست تاهره یعنی تهر بر او آرز شده تهارت بر او چیه؟ آرز شده تا قبل از این نبود الان آرز شد ممکنه یه لحظه بعد دوباره دست نجس بشت بذاریم نجس چیه؟ این حاضر موضع تاهران این تاهر چیه؟ اما یه موقع برمیگنیم میگیم زید تاهرال ارز یا زید تاهرال قلب قلب یعنی قلب تاهری دارد قلب پاکی دارد یا ارز پاکی دارد آب روی پاکی دارد این دیگه لحظه ای نیست لذا اینجا دیگه صفت مشبه است پس بنابراین میگه جمیع و غیرو غیر و وزن فائلن صفات صفاتون غیر از وزن فایل اگر اومده صفت مشبه است خود وزن فاعل اگر دلالت بر سبوت کند صفت مشبه است بریم سر مطلب بعد وزن اتل مضارعه اسم و فاعلن من غیر ز من غیر ز ثلاث کل مواصله از این مثال از این بیت به بعد میخواد اسم فائل در سلاسی مزید ربایی مجرد ربایی مزید بگیر. سلاسی مجرد تمام شد آخرش سر همون یقنافه بود وابا و آتفه زنت و مزارع موازنون المزارع خبر اسم فاعل انگار گفته اسم فائل موازنون المزارع اسم فاعل هم وزن میباشد مزارع اسم فائل از چه چیزی هم وزن مزارع میگه من غیر از ثلاث من غیر جار مجرور بعد از اسم فاعله میشه صفتش اسم فاعلی که از غیر سلاسی مجرد باشه وزن خواهد بود بگو مزاره را من غیر زست سلاس من غیر اضافه شده به ز سلاس یعنی بوده من غیر فعل زی از سلاس غیر از فعل سال سر من غیر فعل زست سلاس مثال که المواصل مثالش مثل المواصل که هم وزن چیه؟ یوواصلوست کل مواصله میگه فقط هم یه حوزن مزاره میگه نه مع کسر مطلوب ول اخیره مطلقا و زم ممی من زایدن قد سبقا مع حال از برای المزاره و المزارهی که مزافون علیه زن است حال از برای مزاف و میاد موقعی که مزاف در هر دو تا چگاه کرده باشه؟ عمل کرده باشه مثلا علیه مرجو کن جمیعا حال از برای المزاره مزاف و نلعی. چون مزاف زن است آمله در او و در آمله در حال هر دو تا هست من کسر مطلوب به لخیر کسر اضافه شده به مطلوب مطلوب به لخیر مطلقن یعنی کسرن مطلقن مفعولون مطلق است برای کس میگه هم هم هموزن است اسم فائل از غیر سلاسی مجرد مزاره را در حالی که اون مزاره به همراه کسر دادن مطلوب و آخرش مطلوب یعنی چی؟ با. یکی و آخر ما قبل آخر کسران مطلقا کسر دادنی مطلق و با, با زمه اتفاست به جای کسر زم میمه و اضافه کردن یک میم که این صفت رو داره اون میم زایدن یک میم زایدی که این صفت بعدیشه قد سبقه قد سبقه فعیل و فعیل فعیلش میخوره به میم رابطه صفت به موصوف. جمله نت است از میم مثل زاید پس اصل عبارت ما اینه نگاه کنید این دوتا بهترو اسم و فاعلن. که اسم فایل مبتدا، که منظور اینه که من غیر بشه سفر که از غیر سلاسی مجرده است موازنون جای زنه موازن المزارعه یا موازنون المزارعه هموزنه است بگو فعل مزارعه را فعل مزارعه در چه حالتی باشه نشه، در حالتی که با کسره دادن به یکی و با آخر باشه اونم کسره مطلق وزن می کردن اضافه کردن میمیزا در اوله خب بریم پایین دیگه ساده است و الا زنت المزارعه یاتی اسم فائلن بر وزن مزارع می آید اسم فاعل من غیر ذ از غیر ثلاثی از غیر ثلاثی مجرد. من غیر ذ مجردن او مزیدن حالا غیرز سلاس مجرد باشد یعنی روبایی مجرد یا مزید یعنی روبایی مزید سلاسی مزید مجردن روبایی او مزیدن سلاسی و روبایی کل مقاسل من کسر به بالاخیره مطلقم با اینکه که کسره بدیم به یکی با آخر مطلقا حالا گاه اوقات خودش کسره داره مثل مواصل از یوباسلون گایی اوقات نداره مثل یتصرفو بگیم متصرف مطرقا مفتوحن کانه فیل مزاره مثل یتصرفو بشه متصرف او مکسورن مثل یواصلو که بشه چی؟ مباسل ما کسرم اون رو میاریم و زم میم زایدم قد سبق اول کلمته و اضافه کردن یک میم زاید به اول کلمه که ببینید مجرد مثال زم کم مدهر جن ربایی مجلد مکرم سلاسی مزید و مفر هن مزید باب تفیل متعلم همینطور این یکی متعلم متعلم کسره دادیم با آخر اما مکرم و مفره و مدهره خودش چیه؟ داشته متباعد یتبا عدو ما کسره دادیم منتظرون کسره داشته خودش بابه مجتمعون مستخرجون مقعن سسون ملحق به روبایی مزیده از قعصه شده قعصه سا. بعد رفته به باب اف شده چی؟ اقعن سسا آخر کتابه سرفنید مقعن سسون مو شاو از عشب اینم باز ملحقه ا برای مبالغه خیلی علفدار شد میگن ا شب شبت یعنی زمین خیلی علفداره خودی مو شوبون مو شوشب یعنی ارفزار خیلی ارفزار از عشب رفته به باب ا عشاو شبع یعشاو شبو اعشی شاون از این کلمه یه لفظ دیگه هم دارم از مثلا حد یعنی اینطوری غوز داشتن مهدد میگن از این کلمه دارن احدو دبن یعنی گوش پشت شد یهدو دبو اهدیداب یعنی گوش پشت شدن.یه کتابی ویکتور بگذاره هرجمه کردن محود و دب روتردام مح دب روردام یعنی گوش پشت روام معشاوش متدهرجون متدهره جون این ربایی مسید مطابقعه دررج است. اینم این مطابقعه هرجم است هرجم تول اووللا یعنی شتر رو جمع کردم. احرنجمت یعنی جمع شدن اجتمان بهتر بود که اول متدهرج و محرنجم رو مثال میزد که ربایی چی هم مزید هم من مغنسس و, و که ملحق حالا اسم مفهول چطور درست میکنیم از سلاسی مزید ربایی مزید ربایی مجرد همونی که مکسوره مفتوش کنی، میشه چی؟ اسم مفهول و این فتحت من هما کانن کسر سار اسم مفعول کم مثل منتظر و این با باطفه است فتحت فعل و فاعل و مفعول جمله فعلش هست منظوم ما مفعولش ها من هم تعلق به فتحت این فتحت من هم ما مفعول فتحت کان این کسر کانه فل زمیر اسمش که به ما بر میگرده. این کسرم فل زمیر فایلش که به ما برمی گرده زمیری که داخل کانه از آید سله به محصول هست این سله ما ساره جزای شرطه ساره اون اسم فاعل، اسم مفعوله می گردد اون اسم فاعل چی؟ اسم مفعول متحول میشه به اسم مفعول ساره دیگه سیرورت بیدام که به اسم مفعول اسم مفعولین خبر سارست مثالهو مثل منتظر این کافش کاف زاید است مثل لیس کمثلی شاید اون مثل لفظاً مجرور محلن مرفوع خبر مبتداش یعنی مثالهو مثل منتظر کاف زاید است اون منوز امیرش میکنه به اسم فائل این فتحت از اسم فائل آنچرا که کسر قبول کرده بود میشه اون اسم فائل اسم مفعول مانند منتظر بیایید بایید و این فتحت هم این یعنی از اسم فائل ماکانه این کسره ساره اسم مفعول این که مثل منتظر ول مدهرد ول مکرم الى آخری تا آخرش خب معلومه اگر یک زمان فیل لازم باشه دیگه اسم مفعولش با چی درست میشه؟ با حربجر مثلا فرض بفرمایید که مثلا متباعد بعد بگیم چی؟ متباعدان به ها مثل مئیسورم به مئیسورم به ما یادتونه درست نکردیم بعدون بهی به ما بهم هم صرف میشه بریم بالا مفی اسم مفعول سلاسی اترده زنتو مفعوله حالا اسم مفعوله سلاسی مجرده نگو میگه و فی اسم مفعول سلاسی اترده زنتو مفعولین اترده یعنی چی؟ شیو دارن شاعت و, و بابا آتفه فی اسم متعلق به اترده است اسم اضافه شده به مفعول مفعول به سلاسی در اسم مفعول فعل سلاسی شاعت اترده خیلی زیاد است زنتو مفعولین وزن چی؟ مفعول وزن مفعول خیلی زیاده زنت و مفعولن فائل اترده است مثالهو مثالش کاتن آتن من قصده یعنی مثالهو که مفعولن آتن من قصده مثالش مثل وزن مفعولی که بیاید از بگید قصده از قصده اگه مفعولیاتی میان مقصود کعاطن یعنی مثالو کعاطن من قصده متعلق به عاطنه عطایتی اسم فاعلش عاطن مثل اون اسم مفعولی که میآید از قصده پیچوند و فی اسم مفعول سراسی اترده زنتو مفعولن کعاطن من قصده و هوه مقصودن ببین اینجا نگفت هو و مقصودن این هوه علامت اختصاری بگی نیست این هوه اشاره داره به ما آتن نزا گفت و هوه مفصول هم. و اونی که از قصد می آید عبارت است از مفصول فه هوه نگفت و زاکه هم که اصطلاحشونه برای اسم مفعول بگی نگفت این برکه هوه آورد. و زاکر نگفت به خاطر این که اوغای اشاره داره به آتن اونی که میاد از قصد کدومه؟ مقصود و گفتش که شیوع دارد وزن مفئول معلوم میشه وزن دیگر هم بگید میاد. حالا وزن دیگر رو میگه وابا با آتفه وزن دیگری که شیوعش با وزن مفئوله معلوم غیر شایه هم داره غیر شایش چیه؟ و نابن نقلن نقلن یه یعنی چیز سماغه و نابن نقلن انهوزو فعیلن نهو فتاتن اوفتن کهیله میگه وزن فعیل از ما زیاد شنیدید میگه فعیله به من ها مفعول مثل قتیل به من ها مقتول جریح به من ها میگه وزن فعیل نیابت میکنه از وزن مفعول و واطفه ناب فیل ذوفعینن فائل نابست صاحب وزن فعیل ها نیابت میکنه از مفعول آنها متعلق به نابست است کج میخوره به مفعول نیابت میکنه از مفعول زوفایل نقلا نقلا به معنای منقولانه اینجا مصدر به معنای اسم مفعوله در با خودش مثال هم است که وزن مصدر اینجا فعل اومده نیابت کرده است مفعول به معنا منقولن حال از برای ذو نیابت میکنه ذو فعیل از مفعول در حالی که منقول باشد در حالی که منقول است یعنی مسموح است از عرب شدیدی نحو یعنی مثال و نحو نحو فتاتن اون فتن کહીل مانند فتا دختر جوان فتن مرد جوان کهیلن از این عبارت فهمیده میشه که وزن فعیل برای مزکر و مهند چیه؟ یکیه اما به شرط اینکه که مصوفش بگید ذکر شده باشه چون ازم عادتی ای اعتاق و حکم به مثال یعنی اگر من گفتم مرد تو به رجلن میتونم بگم قتیلن اگر گفتم مرد تو به امرعتن میتونم بگم چی؟ قتیلن و قتیلت دیگه گفته نمیشه. اما اگه محصوفش ذکر نشه من نمیگم مرر به قتیلن مگر برای مزکر اگر خواستم زن محننس بگم بگم مرر به قتیلتن موسوفش باید ذکر بشه. که این از مثال بحرین کهیل كهيل کهیل به معنای مکهوله مکهول یعنی سلوکی کشیده شده و ناب نقلن میگه نقلا یعنی سماعن انو یعنی وزن مفعولن سلاست و اشیاء سلاست و اشیاء غیر منصرفه لا تسالو میگن به یه نحوی گفتن که اشیاء منصرف یا غیر منصرف بلد نبود گفت مگه ندیدی خدا گفته لا تسالو ان اشیاء انتوب دلکم تساکم اشیاء غیر منصرفه علاو وزن ان وزن مفعولن سلاست و اشیاء احدها یکیش زوفایلن و یستا زو ویفیهل مزکر و ول محننس مزکر و محننس درش یکیه نعو فتاتن اوفتن کهیلن به من آمد البته به شرط که محصوفش چی شده باشه زک شده باشه و سانی ها دومیش بعلان که من بالا نقلون رو گفتم به منهای چی اومده مخلوق چیز به معنا منقول یا هازا خلق الله خلق الله به معنای مخلوق الله و سانی ها فعلان که قبض به معنا مقبوض یعنی گرفته شده و سالس ها فعلان مثل چی؟ که زبه به معنای چی؟ مذبوح تو قرآن داریم و فدعیناه و به زبه عظیم یعنی مذبوح عظیم به معنا مذبوح میگیم این دوتاره که تو این کتاب نگفته از کجا آوردی؟ میگه زکره همافه شرحل کافیه این تا از دو ذکر ده در کتاب شرح کافیهش که مفصولتر از این کتابه اینجا اونی که بیشتر میادو گفته گفته زوفایی زکره همافی شرحل کافی میگیم اینها که به معنای اسم مفعول هستن مثل اسم مفعول عمل هم میکنن میگه ولا تعمل و حاضیه سلاست و عمل اسم مفعول این ستا عمل اسم مفهول رو انجام نمیدن فلای و قال و مرر تو به رجولن زبهن کبشهو کبشهن قوچ درسته اینجا زبه تکیه کرده به رجل ولی نمیتونه کبشهو رو به عنوان نایفایه چیه؟ بلکه باید اینجا به جای زبه گفتی؟ مذبوهن کبشو. از خود اسم مفهول است تو به رجولن زبهن کبشو. به معنای مسروعه یعنی بر زمین افتاده که کنایه از مرده هم میگن کشته شده هم میگن نمیتونیم بگیم مرد تو به رجال سریع انغلامه یعنی مسروعه یعنی مقتول انغلامه نمیشه بگی، ولی مسروع خودش رو بیاریم امکان سرعت یعنی بر زمین کنیم تو نحجر بلاقه داره من سارح الحق سره احو هر کسی با حق در بیفته سره احو او رو به زمین خواهد سریع این و اجازه او ابن اسفوره ابن اسفور این عمل رو اجازه داده در اینها اینا رو قیاس کرده به اسم مفهول گفته معنا... معنای اسم مفهول رو دارن پس عمل اسم مفهول رو هم میتونن داشته باشه درست شد این بنویسید وعلم یه نکته اضافه کردیم گفتیم موصوفش اگر ذکر بشه باید مذکر و مؤنث یکی بشه و الاخه یه نکته دیگه وعلم انه اذا جعل وزن و فعیلن انه اذا جعل وزن فعیلن به معنا المفعول اگر قرار داده بشه وزن فعیل به معنای مفعول من قبایل اسماء معنای اشتقاقیش گرفته بشه معنای چی پیدا بکنه؟ اسمی دیگه معنای اشتقاقی نداشته باشه که مثلا فرض کنی زبیه به معنای چی باشه؟ مذبور قتیل به معنای مقتون منقبیل لصما به انیقل و فیه جانب الاسمیت به اینکه جانب اسمیت درش چیه؟ قوی بشه قوت بگیره فهینه ازن لا يستوی فیه المذکر و المهننس مذکر و المهننس باز در اون بگو یکی نیست مذکر مذکر میاد مهننس مهننس میاد نهو بئیرون زبیه بئیرون زبیه زبیه اینجا فعیله به معنا مقبول بوده ولی الان زبیه به شطور پرواری میگن ها زب نشد الان داریم میگرده ولی میگن این یعنی چی؟ یعنی نهایتاً برای گوشتش برورش داده بشه اسمی پیدا کردیم که یعنی پرواری و ناقتون زبیهتون به معنی مذبوحه نیست به معنی پرواریه ناقتون زبیهتون ببین بئیرون زبیه و ناقتون زبیهتون رجلون لغیت با قافوتای محلفه و امرهتون لقیه داتون بقیه هم همینطور پس اگر یک جایی دیدیم که فعیله به معنای مفعول با محصوف خودش هم هست ولی مطابقت داره میکنه اونجا با از ذهنمونو ببریم که این چی شده؟ جنبه اسمی پیدا کرده بریم ببینیم که ذبیح اونجا به معنای مسبوع نیست پس ذبیح به چه معناست وقتی میریم نگاه میکنیم ببینیم به معنای چیه؟ به معنای... چیزی که قرار زیر بشه پرورش داده میشه برای خاطر گوشتش مثلا علی الصلو الله ربل العالمین و صلی الله علی نبینا واالهه و تابعین طه باب اعمال صفات مشبحه بسم الله این باب بعد از باب اسم فایل است. مفعول باب عمل دادن به صفت مشبهه به اسم فایل است. حاضر باب و اعمال صفت مشبهه به اسم فایل